دانشجویان عزیز امروز ما قسمت دیگری از کلام خدا رو بررسی می‌کنیم این قسمت مورد علاقه بسیاری از مردم هست چون که اون شامل مزامیر و امساله و با قلب ما صحبت میکنه. کلام خدا در خیلی جاها به ما میگه که خدا بیشتر به انسان درونی ما علاقه‌منده تا به انسان بیرونی اون بیشتر نگران وضعیت روحانی ماست تا ظاهر جسمانی ما وقتی که مطالعه کتاب شعر کتاب مقدس رو شروع می کنیم، خواهیم دید که چطور خدا بیشتر نگران شمای حقیقیه، شمای درونی، نه شمای بیرونی و بدن جسمانیتون. به دقت گوش کنید. حالا مطالعه کتاب شعر کتاب مقدس رو شروع می کنیم. این شما و این معلم ما. به درس دیگری از مطالعه کلام خدا خوش آمدید. به این دلیل مطالعه کلام خدا میگم، چون که ما بررسی اون رو با کتاب پیدایش شروع کردیم و با کتاب مکاشفه به پایان خواهیم رسوند. حالا ما بررسی کتابهای تاریخی عهد قدیم رو تموم کردیم. دوازده کتاب تاریخی بودند که با کتاب یوشع شروع کردیم و با کتاب استر به پایان بردیم. در این جلسه ما هایی رو شروع میکنیم که تحت عنوان کتابهای شعر طبقه بندی شدن. به این سری کتابها، حکمت هم میگیم. که اونها رو از کتاب شریعت، انبیا و تاریخ جدا می‌کنه. این پنج کتاب شعر عبارتنده از ایوب، مزامیر، امثال، جامعه و قزل قزلهای سلیمان شاید تعجب کنید که چرا خدا این کتاب شعر رو در مجموعه کتاب کتاب مقدس قرار داده بقیده من جواب این سوال اینه که شعر زبان قلب انسان هاست و خدا بیشتر نگران قلب قوم خودش هست در حالی که این پنج کتاب شعر رو بررسی می‌کنیم، خواهیم دید که این کتاب ها به لحاظ کاربردی عملی کتاب‌های غنی هستند. به این دلیل که خیلی ها میگند این کتاب‌ها مورد علاقه اونهاست. کتاب کتاب‌های شعر بر این حقیقت متمرکز هست که خدا بیشتر به قلب انسان‌ها اهمیت می‌ده. این کتاب‌ها پیامی از قلب بزرگ خدا به قلب قوم خودش در زمان‌های سختی و رنج هست. ایوب وقتی که قوم پرستش می‌کردن، مزامیر وقتی که قوم تردید داشتند، جامعه و امثال زمانی که اونها درگیر کارهای روزمره زندگی بودند و بالاخره غزل غزلها وقتی که قوم عشق می‌ورزیدند. پنج کتاب شعر در شرایط خاص قلب قوم رو مخاطب قرار می‌داد. کتاب ایوب پیغامی داره که وقتی قوم در مشقت و سختی هستند قلب اونها را مخاطب قرار میده. قوم خدا همیشه رنج کشیدند. اگر شما تاریخ قوم یهود رو بدونید یا تاریخ کلیسا رو یا تاریخ دنیا رو، خواهید دید که قوم خدا همیشه در رنج بودند. سرتاسر تا سر تاریخ به ما میگه که مردم در رنج بودند. به این دلیل به واعظین گفتند که همیشه خطاب به قلب های شکسته پیغام بدن، برای اینکه در هر نیمکتی یک قلب شکسته ای هست. اگر شما برای دل شکسته ها مععزه کنید، همیشه شنوندگانی خواهید داشت. به عنوان یک شبان این حقیقت به من ثابت شده قوم خدا قلب‌های زخمی دارند همیشه همین طور بوده در سرتاسر سر دنیای امروزی هم قوم خدا دردمند هستند مردم بعد از جنگ دوم جهانی بیشتر از همیشه در تاریخ کلیسا رنج دیدند و زندگیشون رو به خاطر عیسی مسیح به خطر انداختند و زندگیشون را از دست دادند در سرتاسر سر دنیا قوم خدا همین الان هم درد میکشند قوم خدا در چین در کلمبیا افریقا، کوبا و در سراسر دنیا در سختی و مشقت هستند. زندگی فی نفس سخته. شما ممکنه دلشکسته ای باشید که در نیمکت خودتون نشستید. همه قوم خدا باید علاقمند پیغامی باشند که خدا از طریق کتاب عیوب به قوم دلشکسته میده. کتاب مزامیر وقتی قوم خدا پرستش می کنند، با قلب اونها صحبت میکنه کتاب مزامیر سرودنامهی برای قوم خدا در عهد قدیم بود. امروز سرودنامه‌تون رو باز کنید و حتی اگر چیزی در مورد موسیقی نمیدونید کلام رو مانند سرود از سرودنامه‌تون بخونید. شما زیباترین اشعار دنیا رو در این کتاب خواهید یافت. مزامیر 150 کلام و سرود بدون موزیک است که از طرف خدا الهام شده. کتاب مزامیر زیباترین اشعاری است که در مجموعه کتاب‌های کتاب مقدس قرار داره. مزامیر وسیله است که خدا به قومش داده که بتونند به اون وسیله او رو پرستش کنند. و بنابراین کتاب مزامیر پیغام خدا هست خطاب به قلب انسان ها وقتی که او رو پرستش می کنن. وقتی قوم خدا دردمند هستند چی در دلشون میگذره وقتی پرستش می چی در قلبشون میگذره شما جواب این سوالات رو در کتاب های ایوب و مزامیر پیدا خواهید کرد. کتاب امثال عملی ترین کتاب در کتاب مقدس هست. کتاب مقدس به ما میگه که سلیمان حکیم مردی بود که تاکنون در روی زمین زندگی کرده وقتی شما کتاب امثال رو میخونید و مطالعه میکنید حکمت سلیمان رو تحسین خواهید کرد تمامی امثالی که در کتاب امثال اومده توسط سلیمان نوشته نشده بلکه نویسندگان مختلفی داره سلیمان حدود یک هزار از اون امثال رو نوشته تمامی امثال نوشته شده در کتاب امثال وقتی قوم خدا مشغول کارهای روزمره و داد و ستت هستند و یا در تمامی اره عملی زندگی کار می کنند با قلب اونها صحبت می کنند. گفته شده که وقتی شما مشغول تجارت هستید دو چیز به دست میارید. پول و تجربه. وقتی با کسانی داد و ستب می کنید اما به نظر میرسه که اونها همیشه پول در میارند و شما همیشه به نظر میرسه تجربه کسب می کنید این چیز درستی نیست. خدا این کتاب زیبا رو به ما داده که کتاب شعر هم هست و به ما میگه که چطور از اوطه کارها بر بیایم و به ما حکمت عملی میده و این امکان رو میده که در زندگی پیش بریم و بدونیم که در زندگی چطور با این شرایط مواجه بشیم چون که اون کتاب موعظه بزرگ سلیمان هست که در آخر عمرش به جوانان اسرائیل می کنه. معنی کتاب جامعه در زبان اصلی کتاب واعز هست در کتاب جامعه میشنوید که ویس برای جوانان موعظه میکنه و به اونها میگه کاری که من کردم شما نکنید تجربه تنها معلم نیست اون فقط یک معلم قانع کننده هست. شما لازم نیست که هر چیزی که من تجربه کردم تجربه کنید میتونید از تجربیات من سود ببرید سلیمان در ضمن موعظه بزرگش درباره تجربیاتش با جوانان اسرائیل صحبت میکنه به اونها میگه که چطور شک کرده و توضیح میده که چطور دنبال این بوده که هدف از زندگی رو پیدا کنه. بنابراین در کتاب جامعه شما پیغام بزرگی از خدا خطاب به کسانی دارید که دچار شک هستند چون که خدا میدونه قومش شک میکنن. کتاب جامعه کتاب بسیار بزرگی هست. و آخرین کتاب این مجموعه غزل قزلهای سلیمان هست که یک کتاب شعره و به نظر میرسه که وقتی گوش میکنید به صحبتهای کسانی در ماه اصل گوش میکنید. وقتی این کتاب رو می خونید صحبت‌های عاشقانه دو نفر رو می شنوید که در ماه اصل هستند شاید تعجب کنید که چون این کتابی در کتاب مقدس برای چی اومده به اعتقاد من هدف از این کتاب اینه که به ما تقدس روابط جنسی رو نشون بده که خدا به اون برکت داده اون رو تجویز کرده و روابط زناشویی رو مز کرده و برکت داده روابط جسمی بین دو نفری که ازدواج کردند زیباترین و مقدسترین چیز در نظر خدا هست غزل های سلیمان پیغام خدا خطاب به قوم خدا هست که روابط عاشقانه دارند. خدا به چیزی که در روابط عاشقانه در دل ما میگذره اهمیت میده. وقتی که غزل ها رو می‌خونید، خواهید فهمید که خدا وقتی ما رو زن و مرد آفرید و, و ازدواج رو طرح می کرد، چه قصدی داشت. وقتی که کتاب مقدس رو مطالعه می کنیم میفهمیم که خدا بیشتر به قلب ما اهمیت میده. وقتی که این رو متوجه میشیم، و این قسمت از عهد قدیم رو مطالعه کنیم، باید از خودمون بپرسیم وقتی خدا به قلب ما اشاره کنه، دقیقاً به کدوم قسمت از بدن ما اشاره کنه؟ مثلا وقتی خدا ما رو نصیحت کنه، منظورش چیه که در امثال سه میگه دل خود را به حفظ تمام نگاه دار، زیرا که های حیات از آن است. وقتی خدا به دل در این آیه اشاره میکنه منظورش کدوم قسمت از بدن ما هست؟ وقتی خدا میگه او رو با تمامی دل محبت کنیم، یا با تمامی دل خودمون رو رو طلبیم منظورش چیه وقتی میگه با تمامی قلبمون ایمان داشته باشیم منظورش چیه منظور عیسی چیه وقتی به ما هشدار میده و میگه هر جا که گنجینه شما باشه دلتون هم همونجا خواهد بود و منظور ارمیا چیه وقتی میگه دل ما فریبکار و بسیار شریر هست و فقط خدا میتونه عمق شرارت دل های ما رو بدونه منظور او چیه منظور داوود چیه وقتی که از خدا میخواد که او رو تفتیش کنه و قلب او رو بدونه تا اینکه بتونه دائما در راه های او هدایت بشه. منظور داوود چیه وقتی از خداوند میخواد درون او قلبی تاهر خلق کنه؟ کتاب مقدس از خلوص و پاکی قلب صحبت میکنه و نیز از زنا در قلب صحبت میکنه. ایسا گفته که قلبی فروتن داشته و گفته به ما نشون خواهد داد که چطور فروتن باشیم؟ در کتاب مقدس به ما نصیحت شده که با دیگران، مانند یک سخره ایمان همدل بشیم و به دقت از تفکرات قلبهای خودمون محافظت کنیم. در کتاب مقدس خدا به ما وعده داده که به ما قلبهای تازه میده و ما میبینیم که خدا این کارو میکنه. کتاب مقدس به ما میگه خدا به انسان قلب تازهی میده. کتاب مقدس به ما میگه خدا به قلب انسان نگاه میکنه نه به ظاهران و به ما نصیحت شده که به قلب مردم نگاه کنیم و مرتکب این گناه نشیم که انسانها را به خاطر شغلشون، ثروتشون و یا قدرتشون احترام کنیم. کلمه شخص عملاً به معنی نقاب هست و مربوط به ظاهر بیرونی هست. به گفته کلام خدا، این گناهه که ما مردم رو بر اساس ظاهر بیرونیشون یا بر اساس نقابی که بر چهره دارن قضاوت کنیم. معنی احترام به اشخاص این هست و به ما هشدار داده شده که احترام کردن به ظاهر اشخاص گناهه. آیات زیادی هست که ما رو نصیحت می‌کنه که سیستم ارزیابی خدا رو به کار بگیریم. ما وقتی به قلب انسان ها نگاه می‌کنیم، ظاهر اونها رو در نظر نمی گیریم و در سیستم ارزیابی با خدا در یک ساعت قرار می‌گیریم. وقتی که آیات به قلب انسان اشاره می‌کنه، مضحکه که فکر کنیم کتاب مقدس عملاً به اون عضوی که درون قفسه سینه ما خون رو پمپ می‌کنه اشاره کرده باشه. زمانی بود که یونانی ها فکر محل استقرار احساسات قلب نیست بلکه شکم انسان هست. بنابراین پولس رسول در زبان اصلی به فیلیپیان میگه که او اونها رو با تمام شکمش دوست داره. وقتی که شما به کسی اظهار عشق میکنید، خیلی عاشقانه نیست که به او بگید من با تمام دل و روده هم تو رو دوست دارم. اما پولس برای ابراز محبت از کلمه شکم استفاده کرده. در متن به زبان اصلی پولس به فیلیمون که آشکارا به خیلی از مردم کمک مالی کرده مینویسه تو به شکم مقدسین تراوت و تازگی بخشیدید. منظور پولس از این چی بود؟ میدونیم که قصد او این بوده که مقدسین نسبت به تو محبت پیدا کردند. امروز حتی در بسیاری از زبانها به غلط از این واژه استفاده میشه. در ارمیا چهار نوزده میگه احشای من احشای من شما نمیتونید از تعجب خودداری کنید که او چه مشکلی داشته وقتی ما اون آیه رو در زبان اصلی میخونیم میفهمیم که منظور ارمیا قلب من بوده نه من وقتی دختر بزرگم در کودکستان بود منو به فکر فرو برد که به این فکر کنم وقتی کتاب مقدس به قلب اشاره میکنه منظورش چیه او به یک مدرسه مسیحی میرفت که من مدیرش بودم ما یک معلم کودکستان استخدام کرده بودیم که معلم با تجربی بود اما به عنوان یک نو ایمان چیز زیادی در مورد تعلیم کتاب مقدس به کودکان نمیدونست یا حداقل در مورد چیزهای روحانی دختر کوچک من یک مشکل وحشتناک حس تقصیر داشت و من منبع اون رو پیدا کردم معلم او یک عروسک پارچه‌ای در کلاس داشت او به هر یک از بچه‌ها در کلاس یک گوسفند سفید کوچک داده بود این گوسفندان طوری بودند که پشت رو می‌شدند و طرف دیگرشون سیاه رنگ بود اگر اونها حرف می‌زدند و یا بدرفتاری می‌کردند او گوسفندانشون رو پشت روم کرد و طرف سیاهشون رو می آورد. خب گوسفند دختر من همیشه سیاه بود چون که مرتبا مرتباً حرف می زد. بالاخره معلم به با او گفته بود که گوسفند تو همیشه سیاهه چون قلبت سیاهه. و تو قلب سیاه و گناهکاری داری و این فشار باور نکردنی بر دختر کوچک من وارد کرده بود. سالها بعد وقتی دختر من ده ساله شد ما یک فیلم آموزشی در کلیسامون دیدیم که اسمش رودخانه ی سرخ زندگی بود. اون فیلمی بود که صحنه‌هایی نشون میداد از عجایب بدن مخصوصاً پمپاژ خون در رگها رو نشون میداد. در رابطه با اون صحنه اونها از جراحی قلب باز رو نشون دادن. وقتی جراحان سینه مرد رو باز کردن و قلب او رو نشون دادن، چشمان دختر من از حدقه بیرون زد. دختر من به نظر می رسید که از خود بیخود شده. بعدها وقتی که داشتیم از موضوع روحانی دیگه‌ای بحث می‌کردیم، او گفت: آیا چیزی که به من میگی حقیقت داره یا یک داستانه؟ گفتم خب آیا فکر میکنی که من به تو داستان میگم و او گفت خب شما به من میگید که قلب من سیاهه اما توی اون فیلم وقتی سینه اون مرد رو باز کردن قلب او سیاه نبود، قرمز بود. او واقعا انتظار داشت که قلب اون مرد سیاه باشه. آیا میشد به خاطر این او رو سرزنش کرد؟ آیا میتونیم فکر کنیم که عملا وقتی کتاب مقدس به قلبهای ما اشاره میکنه او چنین فکری نکنه؟ واضحه که وقتی کتاب مقدس بیش از هزار بار به قلب اشاره میکنه منظورش عملا اون عضو کوچیک درون سینه ما نیست که خون رو پمپاژ میکنه کتاب مقدس مکررا ما رو به چالش میکشه که وقتی در روی زمین زندگی میکنیم به یک چشمانداز ابدی نگاه کنیم این کتابهای شعر به ما کمک شایانی میکنند که این کار رو بکنیم چون که اون پیام ها و کاربورد های عملی که در اون کتاب ها هست اشاره به قلب داره که انسان درونی هست. به بودی از وجود ما که درونی و ابدی هست. در این مت من معتقدم که پولس رسول مخصوصا به طور دقیق و واقعی به ما نشون میده که وقتی خدا به قلب انسان اشاره میکنه در واقع به چی اشاره میکنه در دوم قرنتیان چهار شونزده پولس رسول به ما آیه میده که میتونه تسلی عظیمی برای ایمانداری باشه که یک سرطان بدخیم داره اخیرا من دوست بسیار صمیمی رو ملاقات کردم که آخرین مراحل بیماری رو طی میکرد و من این آیه رو برای او خوندم او به من گفت که تسلی عظیمی از این آیه گرفته این آیه میگه از این جهت آزرد خاطر نمی شویم بلکه هر چند انسانیت ظاهری ما فانی می شود لکن باطن روز به روز تازه می گردد پولس اینجا حقیقت عمیقی رو اظهار میکنه پولس میگه که ما یک انسان درونی داریم و یک انسان بیرونی قسمت قابل رؤیت وجود ما انسان بیرونی بدن ما هست کتاب مقدس انسان بیرونی یا بدن جسمانی و قابل رویت و محسوس و از بین رفتنی بدن ما رو خیمه میخونه کتاب مقدس به ما میگه که من حقیقی درون این چادر زندگی میکنم روزی خدا این چادر رو جمع خواهد کرد اما شما شما حقیقی به بود ابدی خواهید رفت این نشون میده که قسمتی از شما که حقیقی و ابدیه انسان درونی شماست انسان درونی قسمت روحانی وجود ماست انسان درونی ما غیر قابل رویت، غیر ملموز و غیر مادی هست. بنابراین کتاب مقدس مکرراً به ما هشدار میده که بخشی از وجود شما که حقیقتاً مهم هست، انسان درونی شما هست، نه انسان بیرونی. چون که انسان بیرونی موقتیه. شما در خیمتون در انسان بیرونیتون شاید به مدت هفتاد سال زندگی بکنید. اما شمای حقیقی انسان درونی شما ابدی هست. خدا میدونه، و هرگز فراموش نمیکنه که انسان درونی شما مهمتر از انسان بیرونی شماست به این دلیلی که خدا اغلب اجازه میده و گاهی تجربیاتی رو به زندگی شما میاره که شما یه بیرونی رو خسته و فرسوده میکنه وقتی این اتفاق میفته وقتی چنین چیزی پیش میاد آیا این حکمت رو دارید که بفهمید اگرچه انسان بیرونی شما حلات بشه خدا انسان درونی شما رو رشد میده بالغ میکنه و برای زندگی در بعد ابدی آماده میکنه این انسان درونی ما هست که به شباهت خدا خلق شده وقتی که کتاب مقدس به ما میگه خدا ما رو به شباهت و مثل خودش خلق کرده این اشاره به بدنهای ما نیست به گفته کتاب مقدس خدا یک روح است. در باب چهارم یوحنا ایسا به زن سامری در سر چاق گفت خدا روح است و هر که او را پرستش کند میباید به روح و راستی بپرستد کتاب مقدس اشاره به دست خدا و راه رفتن خدا در باغ می کنه در کتاب مقدس میخونیم خونیم که خدا یک دست داره و از این لحاظ او شبیه ما هست. الهیدانان این رو قائل شدن جنبه انسانی به خدا میدونن. وقتی کتاب مقدس به خدا اشاره میکنه که او کاری شبیه کارهای ما میکنه مثل راه رفتن ما باید بدونیم که خدا دست نداره چون که او یک روح است. خدا بدن نداره چون که او یک روحه. خدا ما رو به شباحت و مثل خودش خلق کرده. بعد از اینکه قدری از خاک زمین میگیره و به شکل بدن میسازه خدا نفس حیات رو بر اون خاک میدمه و یا روح حیات رو و انسان تبدیل به جان زنده میشه بنابراین این انسان درونی و قسمت روحانی انسان هست که به شباهت و شکل خدا هست چون که روح ما به شباهت خدا هست و ما رو به ابدیت میرسونه بنابراین انسان درونی ما مهمتر از انسان موقت و بیرونی ما هست وقتی شما به انسان درونی درونیتون ارزش قائل میشید به این سبب ارزش شما با معیارهای خدا یکسان میشه. از خودتون این سوال رو بپرسید آیا انسان درونی من یک پارچه است یا از قسمتهای متعدد تشکیل شده؟ اکثر الهیدانان بر این اند که انسان اساساً از سه قسمت تشکیل یافته. انسان بدن داره، جان داره و روح داره. اما بعضی از الهیدانان سؤالی مطرح می کنند. جوهر جان انسان چیه؟ جان انسان اساساً روحانیه. بنابراین انسان فقط دو بخش داره. بعضی از الهیدانان بر این حقیده که دومین بخش از انسان درونی میتونه به بخشهای مختلف تقسیم بشه. شما میتونید انسان درونی رو به احساسات، افکار، اراده، شخصیت و بسیاری چیزهای دیگه تقسیم کنید. وقتی من توی دانشکده بودم تعریفی از شخصیت یاد گرفتم. من یاد گرفتم که شخصیت انبوهی از بسیاری چیزهای مشابه و از خواصی هماهنگ هست. چه کسی این ترکیب از ذات عالی هر روان منحصر به فرد رو به وجود میاره؟ این تعریف پرارزش ولی پیچیده ای از شخصیت انسان هست. شخصیت از کنار هم قرار گرفتن صفاتی هماهنگ و همسان به روشی خاص به وجود میاد تا شما بتونید شخصیت خاص خودتون رو داشته باشید. اما مفهوم همه اینها چیه؟ جوهر شخصیت چیه؟ شخصیت یقیناً مادی نیست، قابل لمس و جسمی نیست. شخصیت نامرئی و غیر مادیه شخصیت چیزی غیر مادیه بنابراین انسان درونی شاید بتونه به ده قسمت تقسیم بشه که همهشون روحانی هستن به قول پولس اساسا انسان دو بخش داره اون تشکیل شده از انسان درونی و انسان بیرونی انسان درونی ابدی هست اون انسان درونی هست که به شباهت و شکل خدا خلق شده بنابراین باید انتظار داشته باشیم که خدا ارزش بیشتری به انسان درونی قائل بشه. من این مطلب رو براتون گفتم که نشون بدم چرا خدا پنج کتاب رو در کتاب مقدس خطاب به قلب انسان یا انسان درونی نوشته. یک نظریه دیگه که کتاب مقدس درباره انسان درونی و انسان بیرونی با ما درمیون میذاره اینه. انسان درونی شمای واقعی هست. انسان بیرونی وسیله یه که توسط اون انسان درونی شما یا شمای حقیقی نشون داده میشه. مثلا انسان گفته زبان از زیادتی دل سخن میگوید به عبارت دیگه شما میتونید با حرفی که از دهان کسی بیرون میاد بگید که در قلب او چی میگذره میتونید با رفتارهای انسان بیرونی بفهمید که در انسان درونی چی میگذره شما میتونید به وسیله رفتار انسان بیرونی بگید که انسان درونی چی هست میتونید از رفتارهایی که انسان بیرونی از خودش نشون میده درک کنید که واقعا چی در قلب اون شخص یا انسان درونی او وجود داره به این دلیلی که کتاب مقدس در سخنان داوود به ما چیزی رو میگه که لازم ما هم مثل او دعا کنیم. خدایا خلقتی تازه در انسان درونی من بیافرین. من چیزی که از انسان بیرونی سر میزنه دوست ندارم تو از کاری که انسان بیرونی من انجام میده خوشنود و راضی نخواهی شد مگر اینکه که در انسان درونی من بکنی و قلبی طاهر در من بیافرینی. من عقیده دارم که داوود وقتی دعا میکرد خدای قلبی تاهر در من بیافرین و روحی تازه در من استوار ساز و اون موقع هست که از کارهای انسان بیرونی من خوشنود خواهی شد همون چیزی رو بیان میکرد که عیسی در مورد تولد تازه اظهار داشت من عقیده دارم که داوود وقتی دعا میکرد خدای قلبی تاهر در من بیافرین و روحی تازه در من استوار ساز و اون موقع است که از کارهای انسان بیرونی من خوشنود خواهی شد همون چیزی رو بیان می کرد که ایسا در مورد تولد تازه اصحار داشت. کتاب مقدس در جاهای مختلفی به ما میگه که پیروان خدا و شاگردان عیسی مسیح اشخاص تبدیل یافته ای به گفته کتاب مقدس ایمانداران کسانی هستند که تغییری در انسان درونیشون پیش اومده. کتاب مقدس همینطور به ما میگه که قوم خدا شاگردان عیسی مسیح کسانی هستند که خدا اونها رو عوض میکنه. ایمانداران دائما عوض میشن و کتاب مقدس به قوم خدا میگه پیروان عیسی مسیح کسانی هستند که منتظر تغییر کامل و نهایی هستند کتاب مقدس بسیار واقع‌گرا هست کتاب مقدس همینطور به این میخنده که ما سعی میکنیم خودمون تغییر ایجاد کنیم در کتاب مقدس خدا توسط ارمیا نبی در باب 13 آیه 23 میگه آیا حبشی پوست خود را تبدیل خواهد نمود یا پلنگ پیسه های خیش را آنگاه شما که به بدی کردن معتاد شدید نیکویی توانید کرد چرا این همه سعی می‌کنید که راه‌های خودتون رو عوض کنید ارمیا همینطور این رو به تصویر می‌کشه که وقتی ما سعی می‌کنیم خودمون رو عوض کنیم و سخت می‌کوشیم که بهتر بشیم خدا به ما می‌خنده این تغییری که کتاب مقدس شرح می‌ده مربوط به انگیزه نیست مشکل انگیزه اینه که اراده ما معمولا قدرتی نداره به این, که ما در انسان درونیمون، به این دلیلی که ما در انسان درونیمون به یک معجزه نیاز داریم. وقتی که کتاب مقدس این تغییر رو شرح میده، فرض بر اینه که انجام شده. کتاب مقدس به ما نمیگه که سخت بکوشیم تا بهتر بشیم و به موجود جدیدی تبدیل بشیم. کتاب مقدس به ما میگه که با شرایط خاصی روبرو بشیم و بعد تغییر کنیم. اون میگه با نو شدن ذهنتون تغییر کنید. وقتی کتاب مقدس از این تغییر صحبت میکنه به ما میگه که ما نمیتونیم شخصا تغییر کنیم این خبر بدیه اما کتاب مقدس خبر خوشی هم به ما میده خدا میتونه شما رو تغییر بده کتاب مقدس هرگز به ما نمیگه که تغییر کنیم. کتاب مقدس به ما نصیحت میکنه که توسط خدا تغییر کنیم. وقتی کتاب مقدس از این تغییر در انسان درونی صحبت میکنه کلام خدا همیشه به ما میگه که تغییر باید از درون شروع بشه اول انسان درونی عوض میشه، بعد تأثیر تغییر کردن انسان درونی در انسان بیرونی هم دیده خواهد شد. ما اکثر اوقات یک افراد در کلیسا همون داریم که سعی میکنه این تغییر را از انسان بیرونی شروع کنه. این نوع مسیحیت میگه حالا که شما به ایمان به مسیح اعتراف کردید، این کتاب قوانین شماست. این کتاب به شما میگه که چیکار نباید بکنید. اینجا تمام تغییراتی که شما باید در انسان بیرونی به وجود بیارید، نوشته شده ما با افراد سعی می کنیم که فشارمون رو در تغییر انسان بیرونی قرار بدیم کتاب مقدس تغییر در انسان درونی رو تعلیم میده بعد از اون هر کسی نتایج تغییرات درونی رو در انسان بیرونی هم خواهد دید خدا شدیدان علاقمنده که ببینه ما تغییر در انسان درونی رو تجربه می کنیم و خدا می خواد که نتایج این تغییر درونی در انسان بیرونی ما هم تجلی بکنه. به این دلیلی که خدا به ما پنج کتاب زیبای الهامی رو میده که به صورت شعر نوشته شده‌اند، به زبان قلب. وقتی این پنج کتاب شعر رو میخونید، احساس خواهید کرد که انگشت خدا قلب شما را لمس میکنه. انسان درونی شما در برابر تغییرات پافشاری میکنه. بر واقعیت درونی شما پافشاری میکنه تا اینکه بتونید در ایمانتون و تجربتون با خدا خالص بشید. شما خواهید فهمید که این کتاب‌های شعر بیشترین کاربرد رو در بین کتاب‌های مقدس دارند من کتاب ایوب رو دوست دارم به عنوان یک شبان مکررن کتاب ایوب رو برای کمک به دوستانی که در رنج هستند به کار می‌گیرم من مشکلات خودم رو با شما در میون گذاشتم هایی که تجربه کردم قابل قیاس با های ایوب نیست فقط یک سری مشکلات بودند به هر به عنوان یک شبان وقتی سعی می‌کردم به دیگران کمک کنم که بتونند از احده رنج هاشون بر بیان و یا حتی زمانی که میخواستم خودم از احده مشکلم بر بیام به کتاب ایوب مراجعه میکردم. کسی که خدا رو دوست داره و دوست داره در حضور الهی او پرستش کنه کتاب مزامیر رو دوست داره. اگر به حکمت عملی نیاز دارید حتما از کتاب امثال سلیمان خوشتان خواهد آمد. و اگر شما برکت یافتید و یا اگر افکارتون شما رو پریشان کرده کتاب مراسی رو حتما بخونید. و بالاخره اگر شما میخواید که در زندگی عشق بزرگی رو تجربه کنید خب کی دلش نمیخواد؟ یقینا از کتاب غزل غزلهای سلیمان لذت خواهید برد. من میخوام این درس رو با به چالش کشیدن شما تموم کنم. ازتون میپرسم آیا تا کنون انسان درونی شما تغییر کرده؟ آیا قلب شما خلقتی تازه شده؟ آیا از درون تغییر کردید؟ اگر نه خدا میتونه و میخواد که اینو در زندگی شما انجام بده امروز با او حرف بزنید وقتی ما با خدا حرف میزنیم به این دعا کردن میگیم مثل داوود شما هم از خدا بخواهید که درون شما هم قلبی تاهر خلق کنه تا بتونید او رو بپرستید دانشجویان عزیز متشکرم که امروز هم با ما همراه بودین امیدواریم که همه شما از خدا بخواهید که درون شما قلب تازه خلق کنه و این درس ها انسان درونی شما رو تقویت کنه میخوام شما رو تشویق کنم که سعی کنید هیچ کدوم از این درس ها رو که در مورد کتاب های شعر هست از دست ندین چون که هنوز چیزهای زیادی هست که خدا میخواد به ما یاد بده امیدوارم تا برنامه بعدی خداوند انسان درونی شما رو تشویق و تقویت کنه